الهیچه هیلو مرزا دیگه عمل به احتیاط هم جمله مثل میزدار خوبی که عمل تارک دو طریق اشتحات و تبدیل رو با تدویرونه ولی مسمه خایل بینه که احتیاط در عرض اشتحات و تبدیل شخص ما که ادرش میتونه اعمادش از روی اجتحاد باشه میتون از روی تفریق باشه میتون از روی احتیاط باشه منطقه مشروط به اینکه که نحوه احتیاط رو بعد باشه چه در مواردی که احتیاط مستوزم تکرار و چه در مواردی مستوزم تکرار نیست مثل خوندن نماز با سوره یا بدون سوره بحث بود که لیکن از ظاهر که آیا امتصال با احتیاط حاصل میشه یا نمیشه کی استدراکی داره از جواز احتیاط که بعضی از خوبه ها بایل بردم جواز احتیاط ها مطلقا لیکن از ظاهر سبوت و احتفاق علا عدم جواز احتفاق به احتیاط بر از من حمی محکی و مناد حلیفی مسئلت عدم و عدم جواز قبل احکیات مطلقا یعنی حتی من عدم تمکنه من علم تفسیری قاعده به عدم جواز احکیات یعنی نماز رو در صحبه مشتبه نمیشه بخونه. چطور بخونیم؟ لغت بخونم یعنی نظر ابن ادریس هیلی نمازی که میگن در محضر خدا باید ببینیم لغت بخونیم از یه چیزای فوق های ما چیزایی میگن؟ که نمیدن دلیلش چیه؟ نمازی که میگن هرچه لباس در نماز بیشتر باشه ثوابش بیشتره و یک حضور خاصی در محضر قبولی پاید بشیم به اینکه که در صحب این مشتبه این نفعه لغت خیلی خنده داره خدا میگه وقابیت اطلاع پیدا کنم به این فتاوا کار ما تمام ما خیلی از اونهایی یاد میگیریم که ابن حضی در محلاتی میگه خود ما داریم یا یکیش که نه تنها هم بلکی که گیه گیه کرد به این بعد با ولی ظاهر محکی یمن الهندیلی مسئله دستالات و بین ادم و حالا میگه چرا دخو خونید و دو خانه خون چون قصد وزی از نمیده قصد وزی از کجو اومده نمیده شاید از یک احکیشان دیگه اومده چون در منظومه شمسی اثریتش نیست این دفعه های ما بعضیشون هاشون اشکار قصد وز با مقردیت که من نمیدونم با این نماز دارم اتیان میکنم یا با اون یکی قصد باید باشه قصد وز مشخصه دیگه مشخصه یعنی تشخص میده به اون من یک نماز بر ذمه من اومده حالا اون یک نماز رو با این نماز دارم الان میکنم یا با دومی اگه ندونی با کدوم شه تکرار نیست قصد وجه رو اینا معتبر میدن باید معلوم باشه با کدومش موقع رو شناس. فهمید؟ اینا تازه وجه عین دندانهایی کلید دید میدونن. اگه نباشه باز نمیشه. این تو و وا توهمه. چی؟ چیه؟ اونقدر چیزهای معتبرتر از این انکارش کردن، علی گیر دادن خلاصه در کتاب و کسی نگاه کنه همون لوایاتی در رساید اومده در کتاب های از سال و سلات سال از سال داره چه از سال و که مرحوم ملکی تبدیلی داره و دیگر از سلات آهیان وجود نداره کسی که از اون لباس نداره یا خواهر ترموله نماز نداره تا چه دستد به شخص که فاقد ساتره ازا نمیشه خواهد بکیم به اینکه لغت نوازده حالا ابن افریس خواهده بله بله سرائب من شد اول دول صفیه سب شد آدرسش نوشتم هست جزوه و این پا نماز و کرا بگه این حکی که تعمیم داده قائل به عدم جواز احتیاطه حتی ما عدم تمکن من علم مفصلی این ممنوعه یعنی اگر قائل بشیم به عدم جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی اشا نداره ولی تأمین بدیم به اینکه حتی ما عدم تمکن من علم تفصیلی این ممنوعه <تص> حالا این همه نظریات هست چه نیازی به این نظریات اینطوری شاست؟ دیمید. چینش مطالبم خیلی مهمه اینه ما مطالب ذکر کنیم که مفید باشه نه اینطور و این ازم فلای دوز لمن تمکنم تحصیل علم بلما علم مطلب میتونه بپرسه که آب مطلب کدومش اگو به جهت قبله حالا تحصیل علم مطلق لازمی یا لازم نیست اگر اطلاق شرط باشه لازم ولی اگر اضافه مانه باشه لازم نیست بپرسیم چون علم به اضافه که نداریم برای چی بپرسیم پس بین دو فرق باشه. اگر قایلیم این به اینکه که اطلاق شرطه باید بپرسیم اطلاقشو احناس کنید ولی اگر اطلاق شرطیت نداره اضافه مانعیت داره پسیدن هم نداره. پس بین این مبانی آقایم قائل به تتسکیف بشید و یادداشت کنید که در این موارد این تحصیل علم به مععلم مطلت بنااً ال شرطیت تکلاع لا ال مانعیت اضافه یا خیلی مهمه نکات نقاات فقی همین است. اگر کسی سر در بیاره پیشرفت میکنه که سر در, در نیاره، پیش دفتی هم نداره ولی اون مرد رو دوبله بلد باشه این تحصیل علم ما این مطلق او به جهت قبله قبله همیتون استدبال شرطیت داره یا استدبال مانعیت داره اونم هم همین بخص درش مدید او پی صوف انتاه تهارت لباس شرطیت داره یا نجاستش مانعیت داره و این هم موانی اختلافی بین مرموم ناینی و آقای خویی و بهترین جا برای تحقیلش جلد دوازده همه موضوع مرموم خویی که دوران هم بین شرطیت و مالیت به این یک چیز یا دو چیز امسال این ها حریان ها در این دل نفته فلا یه جوز لمن تمکنم تحصیل لعلم آن یتوزع ازوئن کی یکتا او به بوق اهده ما به ماء مطلق. اینا چه از نیست ازبوزو بگیره هم با این ازبوزو بگیره هم با اون ازبوزو بگیره. وقت به پیوسته یک ازبوزو بگیره. او یوسف دیالا و جهاته اینه. ای تو جهات هم نمیتونم آموزم. وقت به پیوسته این میگم. یک به بکنه اهده ما حوال قبله ولا یه جوز انگسد یکی صوبه که یک تاو به تحارت اهده ما این هم جایز نیست دراش چرا؟ چون تحصیل علم براش ممکنه بپرسه وقتی میتونه بپرسه علم تفسیحی پیدا کنه چرا احتیاط کنه لیکن از ظاهر حالا این مسئله بود یکی حضوع یکی قبله یکی صلح جواس تاحلر و نجس و مشهوب لااک نظاه من صاحب مداره از تع تعمال در عدم جواز یات، گفته چه اختی از جاییز نباشه. اون فقط مدارک یک حلقه حساب میشه و یک مرحله ای نوبی از سرته که، ممارسته با مدارک دارن می آفاقای دیگهی برشون باز میشه ولی در حوضه ها مدرح نیست مدارکی که با کدام های قبل از خودش نوت دست هست خمد همه شروع پیش درد ولی مدرح نیست تا که در ظاهر صاحب مداری مدارک شرح بر شرحیه دیگه مثل مسالکه منطقه مطمئنه مسالکه مسالکه قسمت عباداتش خیلی مختصر بوده قسمت معاولاتش خیلی مفصله یعنی در فارز شهید ثانی به این قسمت عبادات که خیلی مختصر بوده نوش مومده اینو خفصلش کرد مدارک هشت شده فقط قسمت عبادات رو داره و اگر کسی یک دور اینو بخونه همدازه 20 سال در خارج مدزر داشت تمام مطالبش نوه یعنی چیزهای آورده که قبلش نبود این هم از استادش محقق عدلیلی و مقداری از محقق سالی و خیلی هم از شهید سانگی رفته و بعضی از مطالبش هم از هم بحثش ساعت مغاله ساعت مغاله هم بحثم بودن غیر از این فاقی دایی شدیه صاحب معالم داییشون دو نفری در سه محفظ در زمینی میدن لیکن از ظاهر صاحب مدارک از تعمل تعمل در عدم جواز احتیاط بل ترجیح جواز فی خصوص مسئله تل اخیه گفته چم احتیاط جایز نباشه تعمل کرده تعمل یعنی چی؟ یعنی احتیاط تعمل در مصطبه فیه تعملون یعنی احتیاط قبلی ها میوزن احتیاط جایز نیست در اون سه مصطبه ایشون در عدم جواز احتیاط تعمل کرده یعنی فتوه نداره به عدم جواز احتیاط احتیاط کرده در اون مصطبه ولی در خصوص مصطبه صوبه صوبه اینه که یفتقه به طوارت احده ما قائل به تحضیح جواز شده یعنی فتحای به جواز داده که در دو لباس میشه انسان دوتا نماز بخونه که یک به بکنه به تحالت احده چرا در خصوص مسئله اخیر قائل به جواز شده به خاطر لبایت لبایت داره بنابراین در دو تا مسئله قبلی لبایت نبوده قائل به احتیاط میشه در مسئله سوم مسئله یخیره یعنی سواق در صحبه بین ای مشتبه این به جواز میشه به خاطر لباییت <M3> در ادامه خود مصنف داره و در اللهو متعملون بکن بعد قبلش داره ترجیح جواز در خصوص مسئله اخیله من اون در همه مسئله دیست و در اللهو متعملون بکن یعنی ترجیح جوازش خصوصیت نداره اون تعملش نسبت به حد سمسطر با این خصوصیت داره خصوصیتی که قاعد یعنی موجب قول به جواز شده روایت یعنی در هر مسئله هم ووضوع و هم قبله و هم صوت از خصوصیت لی مسئله اخیله به خاطر مسئله اخیله یعنی سلات در سو بین مشتبه خصوصیت نداره حالا به نظر شیخ خصوصیت نداره ولی صاحب مدارک میرو خصوصیت داره خصوصیتش خصوصیت هم <متصور> <متصور> <متصور> به مدار خصوصیت صاحب مدارک خصوصیت نیست <متصور> ند اللا خصوصیت از ولی عدم اشراف مصنف مبانی صاحب مدارک اینطوری توضیح میکنه. فرموده لا خصوصیت در مسئله تلاخیره چرا بر این ساعت خصوصیت داره چون اتفای خصوصیت رو قبول نداره برای این خود مصنف قائده مهمه نیگه ساعت مدارک کدومشون خود بگه ساعت مداره تعمل در عدم جواز احکیات داره در هر سه مسئله ولی در مسئله اخیره قائده به جواز شده و مسئله سوم که بایده به جواز شده با خاطر خصوصیتی که براش داره ولی ما زنده میگه خصوصیت نداره احتیاط در حسه جاست و اما از یا توقف ال احتیاط رو علا تیفا از نیگه هم داره به نیگه نمازه با سیگه یا خونه میگه دونستون برن احتیاطش به چیه ها به سلات محض جمیع ما یختمل ان یکون جز با همه چیزا که احتمال جزئیت داره احتیان دو کنه و ظاهر و عدم و ثبوت اتفاق علال من مند احتیاط اتفاقی و عدم جواز احتیاط نداره که شخص نمیتونه احتیاط کنه نمیتونه برد مای و عملوان یکونه جزئن او شرطن بیاره نه اشنان نداره احتیاط کنه همه رو بیاره عدم و ثبوت اتفاق این علم منع من ال و حجوب تحصیل یقین تفصیلی با پرسیدن امثالی کن نه لازمی، شخص میتونه احتیاط اتفاقی بر من نداره بلا یبعوت ذهاب المشهوره الازاله لیکن لیکن بله عدم ثبوت اتفاق بر من از احتیاط که بگیم احتیاط ممنوع و واجب تحصیل یقین تحصیل عدم نه وجود حجوم عدم ثبوت اتفاق علاوه حجوم تحصیل یقین تحصیل لاکن لیکن لا یبوزه ها والمشهوره در من نه مشروع قائل به من از احتیاط باشن مطاعت نداریم اینکه اتفاق ثابت نیست مشهور علم قاعده به این حرف رو بزنن یه نیچیه یه قاعده به عدم جواز احتیاط باشن شخص نمیتونه احتیاط کنن ولو مستزمه تکرار نیست همداره مدار اقل و اکثره بازم نمیتونه احتیاط کنه. بگیم هر احتماعی احتمال و داره بیا لَا كَنَهُوْ لَا يَبْعُدْ زِهَامُ الْمَشْهُورِ الْا الَلْمَنْهِ مِنَ الْاِحْتِيَاتِ مشغول علم قائل و قائل باشه بر کلام سید الرزی رحمه الله فی مسئلت جاهل به وجوب القصر اومده یه رو از برادر سید که بوده پرسیده و سید کرده پی مسئلت جاهل به وجوب قصف که شخصی که قصف و اتمام رو نمیدونه و جاهل بوده این بعدا باید عاده کنه یا عاده نکنه بعد پرسیده و سید مرتضا قائل شده به اینکه به جمله عاده نمیخواد بعد سید رضی میگه اجماع داریم برای اینکه که شخصی که جاهله به باشه نمازش باطل این شخصی را باطل نشده یعنی جاهله به قصر اتمام چرا از قاعد خارج شده سید مرتزا فرموزه به خاطر اینکه که قصر اتمام متبعیره متبعیره مثل سایر موارد نیست البته ابحام در عباراتشون و در سوال و تنریز نیاده ولی منحیصان مجموع همین موقع بگیر که در اطاف های قبل هم بودید این مسئله جاهله به رجوع جاهل به قصر و ظاهل تقریر اخیه سید مرتزا لهو تقریرش کرده شخص جاهل عملش باطله و ظاهر تبریر سید موتزا سبوت و لجما علا بطلان صدات منلا یعلم و احکام ها نسید که آلم و نمازش نیست نمازش باطلی بعد چرا شخص جاهل به قصد اتمام اینطوری نیست گفتن مجزیه به خاطنی سید موتزا جواب داده که متقیل بعدا همین اقريه و همین جواب‌ها باعث شد که خب های بعدی قائل به ثوابت و متغیراتی باشه که بعضی از احکام خود احکام نیست بلکه شرعیه مثل قصر ایمان شخصی که نمی‌تونه قصد رکن تمام خونه و بلاک معجزه حالا اخیراً بین وقت و خارج وقت و بین که به جای قصد تمام خونده یا به جای تمام قصد خونده همه یه تفصیلات قاعدم ولی علال قاعده هیچ فرقی بین همه اینها نیست شخص جاهل به قصد و تمام حکمشینه که عملش سعیه این نسبت به مسئله اول مسله بعدی حاضر که دوهی تبدیم در علم تفسیلی علم اجمالی که علم تفسیلی و علم اجمالی مقدمه و هم دیگرد حکوم علم تفسیلی از زن و معتبر و تفسیلی و یقدم علم علم اجمالی و علم تفسیلی و علم اجمالی گفتن مقدمه شخصی که ما از دحصیل علمه نمیتونه اجیاده شخصی که متمکن از علم تفسیریه نمیتونه احتیاط کنه حالا مسئله که جمومینه که آیا زن معتبرم ملحق به علم تفسیریه شخصی اگه تقلیب بکنه که زن معتبر حساب میشه اونم مثل علم تفسیریه که مقدم بر احتیاط باشه یا نه شخص میتونه احتیاط بکنه تقلیب دره مسئله در جواز و تقدیم تقلیب و احتیاطه و هر یل حقوق علم تفسیلی از زن تفسیلی یا معتبر یعنی هم تقلید تقلید زن تفسیلی یا معتبر آیا تقلید کنم در این مسئله به احتیاط کنم بازش خلافی و یقدم علال علم اجمالی یعنی برای احتیاط املا حالا مثلا يو قد عمل على علم الاجمالی بنویسی نا تسامح در تعبیلات و انداف و قد عمل على الامتصال الاجمالی اجمالی می نویسه ولی مرادش هم امتصال اجمالیه که اخیار باشه اب تحقیق مختصای تحقیقیه که میگه قائل به تفصیل قائل به تفصیل این ذنن معتبر آیا ذنن مطلبه یا ذنن خاصه در کتاب انصداد رسائل به صورت مصطوفا انصداد رو بحث کرده یعنی چهارمی دلیل بر خودشیت مطلق زنون در زمان قیبت انصداد فقهای امامیه سه تا نظریه دارن در زمان قیبت در از قائل به انصداد این باب علم و علمی مثل قدم های اصحاب یه قاعده به این فتا یعنی راه این باز بازه اشخاص میتونن به علم برسن ما به احکام واقعی یه نفس و امریکه اقانیز پیدا کنیم مثلکه این فتا مطلب این علم و علمی مثلکه دوبون انصداد باب علم و علم یعنی انصداد مطلق. تمام راه ها بسته است نه علمی حاصل میشه چون معصوم رو نمیبینیم و نه علمی امارات هم علم آور نیستن نهایت زرن آور انصداد باب علم و علمی یعنی هر چیزی که به علمه مثل همه امارات و عدده و کل و ساید شیر علمیه این مذهب دون قاعده به انصداد مطلب یعنی باب علم و علمی و در قومه این نظریه ویزای قومه قاعده به اینکه <تصفح> باب علم و علمی منسد. تمام امارات امارات که ما داریم یعنی تمام و, کتب و ساید و کتوبر و سایر کتوب های نهایت چیزی که برای ما ازشون حاصل میشه زن و مطلق بدن، نه زن نخواست مذهب سلبون و قرآن بایان کرده قرآن که میتاید با میگاهده به اینکه هیچ حدیتی برای غیر مقصودین بهتخام ندارد قاعده به که اون مقصوص اونهایی با پیان بودن اون به لدمانه نظریه است نیشون نظرش اینه که زواهر قرآن خودتییتش اختصاص به مقصودی به افهام دادن اونا که بودن ما که نبودیم مقصود به افهام نیست وقتی نیستیم برا ما حکیت هم حالا نظریه است نظریه ای که بد برداشت شده خیلی حرف پخته ایه بعد پیچوندنش خرابش کردن خیلی مقصودینی به افهام که میخواد بگه چون میزای با می تو نیسی حرف اینطوری بزنی که در نهایت وحنه بلی که مرادش دیگه که در محلش میگه حالا علاقه تقدیم میگم برآن رو اینطور به ادم اونجید زواهرش مثل افایی مذهب سه بومینه که قاعدم به تفسیر یعنی انسداد باب علم و انفتاح باب علمی باب علم سبته چون ما ایمان رو نیمید ولی باب علمی مفتوله قول مشغول متاخرین و مصنف همینه قاعدم به؟ انصداد این باب علم و انفتاح باب علمی. سفه نظریه که در باب انصداد رسائل وقت بذارید بخونید این در صورت شرح هم نمیشه این شده شده شده بلده بلده بلده نه این ها رو باز نداشتم هم بودم نه بو بایی نم این هم بازی دیگه بود از این مقصد اینور بازی می یه موزن این یه بازی بود شون افرادی که نشستم باید یه آماری بدن دیگه چرا داری میکنه بگن آقا این محدود هاره این طوریش کرد، دست شما در نکنه که دارید زحمت میکشید. قصه اسلام رو دارید میخونید مقدار این در پاکیه شاکله خرابه شاکله خرابه یعنی وقتی این محدود منصد میشه به چار سال شیش سال ورقه خوابتی میشه و بناس ما وجبی بخونیم بریم و هر کسی و ناکسی استاد میشه فایده این نداره تو همون جلسه من مستح کردم که تمحوظ در اساطی باید لحاظ بشه ما هر کسی رو نیاریم برای تدریس اونایی که ممحظ در تدریسن فقط تدریس کنه و صداش در نمید یعنی ربط مطلب بعد 6 شیشتا تدریس چهارتا تدریس این ها بین نیست یعنی مطلب که اینجا گفت جایی دیگه هم بگو شیشتا تدریس نمیشه دوتا تدریس بیشتر اجازه ندیم اونم باز قبول نکردن به اون خواهد این هم نداره برنامه منتج نیست حالا شاید یه دو سالی بهش اضافه بشه یه مقدار بیشتر بخونن ولی منعیز و مجموع باز میمونه باب انصداد رسائب خیلی از مطالب رو داره الان کل به شما بخونید نداره که احکام عقلی قابل تخصیص نیست ولی تو قسمت انصداد داره. یعنی همین قاعده تو اون قسمت اومده از جاهای دیگه نداره و خیلی از مطالب دیگه ولی وقت بذارید بخونید در این تعدیدات که پیش میاد آقای این قسمت ها رو بخونم قسمت احکام وزیدیش رو بخونید انصداد رو بخونید سه همیشه این صفیق 150 صفیق جلوتر از کلاس باشید که خیلی بهتره. اشتاق به همین مباعث که این دارید و که داسم مطلبی های بود یا هستید حالا این سه تا مثلکه مثلکه انفتاه مطلق مال مشکور بودم مثلکه انصداد مطلق نیزای بومی در ق هفت قوانیدن که مراجعه میمونید حاشیه سید یزدی رو حتما ببینید سید قزوینی رو سید غزوینی در هاشیم قوانین خیلی مطالب پخته داره این پخته ترین مطالب رو ایشون داره در حد یک سفر و دو سفر می خیلی پخته و راه کشن آره شاپای قبلیه بگه خانه ها خیلی زیباست یه اون اشارت به قیمت خون باش چاب های خطی قبلیه کتاب کنه ها میتونین تغییر کنید کتاب های خوب رو چاپ نمی کنن کتاب های بدهت نخبه رو شاب. و تکرامیه مصدقی سه و مصدقی مشبور و همین اصل مبانی آدم یاد بگیره خودش خیلیه سه تا نظریه در باب انصداد بدون این خودش مثلی دیگه خوشان میشه بر انسان مشکور متحقی و مصنف به تفسیر این باب علمی و انصداد باب علم این های که قائده به انصدادن چه انصداد مطلق چه انسداد فجام این ها مقدماتی دارن. که معروفه به مقدمات انصداد مقدمات انصداد آیا چهار تا یا پنج مشهور میگن چهار تاست آخونده پراسانه میگه پنج تاست یکی اضافه کرده بشتیم و به ترتیب این طوریه که در درزوه ما اولین مقدمه از مقدمات انصداد که سفیه ست افتاد و پنج نوشتیم اینه که ما علم داریم اینکه تکالیفی داریم مثل حیوانات نیستیم انسان با حیوان فرق داریم به تکالیفی ماها داریم و باید پیش برسیم و اینا رو به دست بیاریم عمل کنیم دوم اینه که اهمال این احکام از نظر شرعی جاعز نیست بیاییم بگیم احکاموتون به دست ما نرسیده شارعینا رو اهمال کرد و از ما برداشت و از این اهمالش هم جارز نیست سوم اینه که اگر ما بخوایم احتیاط بکنیم چون یه احقامی هست باید دنها یکی از شاخصترین راه ها چیه احتیاطه؟ احتیاط مسترزم عصر وقتی مسترزم عصر و زندگی انسان رو مختب میکنه احتیاط واجب نیست مبنی در پس چیه؟ عدم وجوب احتیاطه نه عدم جواز احتیاط عدم مجوب احتیاط چون استرحرش وجوب رو برمیداره نه جواز رو نمیگن استرحرش داره و جایز نیست نه واجب نیست اون الزام رو استرحرش برمیدار پس مقدم سوم عدم وجوب احتیاطه نه عدم جواز احتیاط و روی این مقدم سوم بحث داریم مقدم شهارم هم اینه که ترجیه مرجو، بر راجعه طبیه. ما بیاییم موهومات و مشکوتات رو عمل بکنیم به مزنونات عمل نکنیم اون قبیه لذا یا تعییم عمل به مزنونات یا تعییم عمل به مزنونات عمل به مزنونات یا حکم عقل یا کشف شبه نمیشه دیگه نمیشه ما بردمات یه مقدار ابهام داره خوب ترسیم نشده یعنی مقدمه دوم با اینطوری میمونه احکامی هست و ما نمیتونیم علم آنها حاصل بکنیم باقی علم و علمی آنها منصد و همثال اینا. حالا مهم نیست خیلی ما کار به ایسیده ما یه مطلب دیگه میخوایم بگیم در ارتباط با مقدمه سیدبون مقدمه چهارم پس شد که به معمومات و مشکلات نمیشه بکنیم و مضمونات رو کنار بذاریم یا تعین عمله به مضمونات عمله به مضمونات متعینه یا عقلن یا شرح اگر عملی باشه میگن مکومت اگر شرحی باشه میگن کش چیزایی که در کلمات هست و خیلی بهش مانور میدن انگار شب خوبا من که عقل حکم میکنه به اینکه شما به مضمونات عمل بکنید حالا زن ما ولو از تیران قراب باشه یا جریان میزاق باشه فرم نداری لباییت خودش اگه یه نامدانی ازش آبریخت و ما زن به حویو به نماز جمعه پیدا کردیم خاید من کن. چه تیران قراب و چه جریان میزاق یعنی هر زنی نزد ریضا قمی واجباعمل هر زنی اینو میگن مطلق الزن مطلق زن کدوم زنه زنی که دلیلش دلیل انصداد هر زنی که هجیتش مستند به دلیل انصداد و مقدمات انصداد باشه بهش میگن مطلق زن و زن مطلق در مقابل زن خاص زن خاص به زن میگن که دلیل خاصی برای اعتبارش اومده مثل آیه نبر و امثال اینها رضا ما دو نوع زن داریم زن مطلق و زن خاص میرزای قومی قائل به قدشیت زن مطلقه یعنی به هر زنی در زمان قیبت بیشن این نظریه ایشونه بعد در مقدم ایسه گفتیم که چون اصفه هر اجازه میاد احتیاط واجب نیست نه اینکه جاز نباشه ولی معزال مستن ویزای قومی قائل شده به اینکه در در دبرانم بین تقلیب و احتیاط تقلیب مقدم احتیاط جایز با این که باید احتیاط واجب نیست چون ایشون انصدادی بیده انصدادی با قدمه عدم وجوب احتیاطه نه عدم جواز احتیاط ولی معذاره قاعده به عدم جواز احتیاطه لذا مصنف یاد گرفته بعد از لذای که چرا ایشون با این که انصدادیه قاعده به عدم جواز احتیاط شده ایشون باید قاعده به عدم وجوب احتیاط باشه مثل ما هم نه اینجا احتیاط جایز نیست زن مطلب مستند به مقدمات انصداد منتج و هر نوع زمینیه بلا زن احتیاطی چرا گفته جایز نیست حالا ظاهر تعبیر مصنف اینطوری طوری هم که برش گرفتن ولی نیزای قومی اینم نمیخواد بگیر این نیست که واضح ترین مطلب و میرزای بومنی ندونه یا بخواد ففلت کنه. ایشون که باید به عدم جواز احتیاطه به این دلیلی که مصنف برای شیده نیست دلیل دیگه برای خودش داره الان کن به در این نسمت فرموده از یعنی مقتضای تخدیرن یعنی نزنن مذکور اینکان زننن مطلقاً یعنی مما مم نمیست بود اعتبارهو الا منجهت مقدماته مقدمات انصداد المعروفه بین المتاخهی که همه انصدادی شدن همه قائل به انصداد شدن و گفتن رأی نداریم حالا یا انسداد مطلق مثل میزای قمی یا انسداد فلجمعه مثل خود و سنده تیگفتن ما علم نداریم همه اینها علمیه یعنی تمام وسایل شیعه نه علمیه این مستنده به علمه بهلا خودش علمیسی نه زنونه زنون خاصه دلیل انصداده که معروف به این متاخرینه در اثبات زن مطلب اگر این زنی که بناس مقدم بشه بر احتیاط اگر زن مطلبه فلا اشتاله فی جواز ترک تحصیلی نکنه و الاخص به احتیاط ظالم یا توفتق حالت و بریم کنیم اگر زن زن مطلبه رها و بر احتیاط و, و من المحقق قمی ممن يعمل من یعمل امارات ما به زن مطلب سمیز هم و الادم سهت عبارت عبادت تارک طریق قیل و, و تبرید این هم قمیه برموده تحصیل میکنم از میرزای قومی که قاعده به حسیت زن مطلبه با دلیل انصداد و مقدمه سبب سنبون عدم وجوب احتیاطه نه عدم جواز احتیاط معظاره قاعده به عدم جواز احتیاط شده و از یعنی قومن از قومی که یعمل و بالامارات منباب زن مطلب نه زن خاص دمه یزه و اله ادم سه حد عبادت شخص محتاط گفته عبادتش باطنی یعنی تارک طریق یه دشتهاد و تبرید و الاخذ بالاحتیاط عملش در مود باطنی حالا شبهید که نیزای قمومی رو وادار کرده که فایله به قطلان عمل شخص محتاط باشه چیه؟ قصد وجه یعنی تنها مشکلی که در عالم اسلام هست قصد وچه مشکلی بالاتر از این نداره ولعل شبه من جهت اعتبار قصد وچه چون گفته در احجاد قصد وچه از این و ولی افتاد حاضر شبه و اثبات صحت عبادت المحتاد محمد و ناخر اینجا نمیتونم بگم ولی در محرمت دیگه آورده بحث کرده آدرسش هم نوشتم در بحث انصداد مصنف اینو آورده مطرح کرده هم که در وقت و هم جلد دوم از این در سایل های جلدی جلد اول صفحه 419 و جلد دوم صفحه 407 و کتاب تحاره خود مصنف جلد دوم صفحه 44 کتاب تحاره حالا 35 هم منویشید نا اینجا نویشن 44 شاهده مشتباه دیم من این دو تا کتاب بکر دو هم باز می کنم شافه رو برای پایجه آره آره همین شافه شافه کنگه دیم ولی ابتال حاضر شبهه و اثبات سه هده عبادت المحتاط محلان آخر حالا در این سه مورد اومده بخص کرده و قاعد شده به اینکه این شبهه که برزنیزای بومی آرز شده شبهه سوسی و هم مایزا طرف قفل احتیاط على تکرار فکر جواز الاخذ بهی و ترک تحصیل زمنه به تعیین المکندفه به او عدم جواز و چهان در موالی مصادم تکراره چهار طرف باید نماز بخونه یا تا باید نماز بخونه یا سبت باید نماز بخونه این می شخص میتونه احتیاط بکنه یا نمیتونه من دلیل جواز احتیاطه من امنال امده به المطلق لم يسبوت الا جوازه و عدم وجوب تقدیم الهتیاد على الزمن و اما تقدیمهو على الهتیاد فلم يدل علیه دلیل نداریم که زمن بل اهتیاد مقدم میشه و من ظاهر دلیل عدم جواز النزاهه ان تقریبا تکرار وقت هيو که شعبت حکمیه مع ثبوت طریق للحکم الشرعی ولی زن مطلق باشه خلاف و سیرت مستمد و بین در علما سن احتیاط میکنه به سن مطلق کدام عالم مدیدی نماز 4 بار بخونه خلاف و سیرت مستمد و در العلماء معنی جواز عمل به زنه اجماعی این دلیل دوم بر افزه به و یکی فی ادم جواز, جواز احتیاط به تکرار کافیست در ادم جواز احتیاط به تکرار احتمال و ادم جوازه این جواز عمل به زن معلوم به اجماع قضا مبرزه مست قطعا به خلاف احتیاط که مبرع زمه بودنش مشکل کرد مبرع زمه بودن احتیاط مشکل و به دیگه به تقلید عمل بکنیم یا به زن مطلق عمل بکنیم مبرع زمه بودنش معلوم و یک فیزی عدم جواز احتیاطه احتمال و عدم جوازهی و اعتبار اله اعتقاد تفسیلی فی مقام اله باید تقلید نیم تقلید مبرع زمست هم، ولی احتیاط مبرع زمست به نهر مشکوب تضا معلوم بر مشکوب مقدم میشین ولها سه این نل ام دا در مواردی اینکه آیا تقلید بکنه یا احتیاط بکنه مطابقن برای اینکه عوام الناس که طرق احتیاط رو بلد نیستن احتیاط به کیفیت احتیاط رو بدد نیستنیم اصلا بدد نیستن احتیاط بعضی از موارد شروعی داره نمیتون رعایت کنن کیفیت احتیاط رو حتی نمیتونن در این اوره بعضی از موارد نگاه کنیم فتاوای هایی هست عنوان احتیاط مطرح شده محشین حاشیه میزنن بر اینکه این احتیاط خود. یعنی اتفاقا احتیاط برخلاف اینه این فعل اینطوری به نهر فتوار احتیاطی گفته شده این احتیاط نیز احتیاط در مقابلش ولها سلم نلوه دا هرون بین تحصیل لعتباد تفصیلی یعنی تبرید ولو کان از ظلمن و بین تحصیل علم به تحق و اطاعت ولو اجمالاً یعنی احتیاط هم داره مناره این دوتاست تقریب کنیم که بکنه بکنیم و معقد نظره دلیل خارجی اگر دلیل خارجی مثل سیر ما ماوی ها نباشه یکی شبه ما مشخص بکنیم یکون و ثانی یعنی احجاد مقدمن علال اول فی مقام اطاعت به حکم العقل و العقلان هو مختزای قایدینی که احجاد مقدمه و تقریده لیکنه بعد العلم به جواز الابن حجیت زن نمطفر و شکلی جواز الثانی به حجیت احتیاط به شرعیات لذا تقلیم مقدم بشه برای احتیاط چرا شکلی در حجیت احتیاط داریم؟ چرا شک داریم در حجیت احتیاط منجهت من منع جماعت من الاسحاب منذاره جماعتی از فقور اومدن گفتن احتیاط جایزیست وقتی میگن احتیاط جایزیست ما به شکل میاندیم مثل ندریس و میزای قومی و بعضی از تابعین اینها خواهدن به من احتیاط چرا من کردن این جماعت از احتیاط و از کجا معلومی اینا من جهت اطلاق بهم اعتبارنیت برش چون در کلماتشون مطلبا میگن نیت درجه بحث معتبره کسی که قائم میشه به اعتبار نیت لغ یعنی نافی احتیاطه. احتیاط کنه قالا لا تو ترکو حاصل احتیاط احتیاط ترک انضیاف احتیاط. احتیاط در این به تکلیف نمند قالا اهوتو ترک زاله و الا ممکن واجب باشد و من احتیاط من. و این احتیاط, احتیاط واجبی که نمی دور کرد دهد یعنی چی؟ یعنی احتیاط این احضیات احضیات رو جایز نمیدونن دیگه وقتی جماعتی از فقها احتیاط رو جایز نمیدونه ما نمیتونیم بگیم امداری بین احتیاط و تقلید نه باید تقرید بکنم اقاردشون که ما یه ترکردنشون تردیم بودن که احتیاط بستن اما این نفعه احتیاط کردن مستام احتیاط نه اون درده میاد میگه چون احتیاط رو من کردم خیلی از فقها و ایشون خیلی نظر به نظر فقهای های دیگه داره فرموده چون رو میگن نمیشه احتیاط اینه که احتیاط نکنید خیلی از اینطوره یک این نمونه من مثالشو بگم مراجعه کنید در وقت قصد قربت معتبر نیست قصد قربت معتبر نیست در تحریر وسیله امام فرموده و الاحوط و زاله فتوای به عدم اعتبار داده ولی فرموده احتیاط که قصد قربت باشه چرا احتیاط کرده؟ به خاطر بول شیخ مفید شیخ مفید اعتبار قصد قربت در وقف به احتیاط کرده احتیاط وزشی نه اگه مخالفت با یکی از فقها نکنیم احتیاط میکنیم. نمونه بارزشان و نمونه شما پیدا کنیم و حتما به تحریف وسیله مراجعه بشه همین قسمت رو پیدا کنه. که این احتیاطش به خاطر مخالفت عدم مخالفت با قول شیخ مفید این هم همینطور چون جماعت اومدن گفتن نمیشه برموده پس احتیاطی که احتیاط نکنه و احوات تو تن با احتیاط و این در میکن یعنی این ما احتیاط وجوبی نیست احتیاط استهبابی و این لم یکون حاضر احتیاط واجبا احتیاط استحبابیه نه احتیاط موجوبیه بعد احتیاط موجوبی هم باشه بعضی از موارد قابل رجوعه به دیگریه بعضی از موارد غیر قابل رجوعه به دیگریه حالی کشون فرمونده بعد فرم احمد طور استحبابی تر کدار کد احتیاط را فرم ساعت بعد مدرس چند؟ م هم که پایین احتما یه می بزرگتر است